ان ندوه اما قبل لزیم که ندوه رو بحث کنیم درس قبلی اشتغال بود و مثالی رو عزیز ما مطرح کرد چی بود این مرآتون خافت من بعلها نشوز. نشوزن خب بینید این قطعا این چه هست این چه هست این شرطی هست اگر اینم راعتون خافت و این گفتیم از اون عداتی که فقط بر چی یاد؟ بر فعل ها یاد خب پس ما میدونیم که بعد از این فعل اومد ولی این فیل ما از کجا بدونیم که این نیاز به فاعل داری یا نیاز به مفهول از که ما بعدش با... اومده و تفسیرش میکنه مثلا در خود اشتغال فیل بعدی اومد فیل قبلی رو چکار میکرد؟ تفسیر میکرد فعل چی بود همون فعل تفسیرش میکرد فعل همون بود مثلا در مثال ال غریبه قابلتهو فعلی که قبل از غریب اومده قابلته است فعل متعدیه که نیاز به چه داره و این غریبه ما فولی اما در ان امراه خافت امراه فاعله چرا فاعله چون خافتی که بعدش اومده تفسیر میکنه که فعل ماقبل چه هست و فعل ماقبل نیاز رو چه داره نیاز به فایل داره. نیاز به چی داره؟ نیاز به فایل داره. پس این امرأ خافت، این این شرطیه هست. فایل شرط حس فایل شرط چیه؟ ف. امرأ فایلش. این امرأ خافت. فایلی خافت؟ بله. خو خافتی که حس ف؟ آخر بین ضرر من. این امرعتون امرعتون که نمیتوند مستقیم بعد از این بیاد بخاطر این که ما قبلاً گفتیم این از عداتی است که بعدش باید بیاد فعل. فعل بیاد همینی که امراتون بیاد میدونیم که فعل مقالش چیه حصفه و اون فعل چیست فعل بعدی میگه فعل بعدی تفسیرش میکنه خافت تفسیرش میکنه بله خو ترجمه شما روان داره این معنی میکنی. اگر زنی ترسید است بشوش خب پس بیایید انود تو نودوه انود نود چون بحثشو در بحث بحثش نه این اشتغال نبود بیایید سروران من بیایید اینجوری اگر اینجوری که شما دست گرفتید زیدونی از ربو هم میترسم که بگید یه موقعی اشتغاله خب بیایید اندبه تو اندبه تو ببینید ندبه اه الهاز ایرابی همون مثل چه هست ایراب منادار رو داره بحثاشو به شکل مفصل میاره در قوائد و علی و مخصوص نودبه هست و مخصوص چه اگر جایی خودش تعریفش بکنه مثلا در یکی مصیبتی پیش اومده تو وای علیون میگن دیگه خب بیایی و فلانون و زیدون ها؟ یا خودش توضیح میده نود برا یا نود به متفجع علیه هست فاجعه برش پیش اومده یا متوجع من هست یا از سمت او دردی برای مردم وجه ای اومده که الان هر دو, دو گروه زمسله را آورده به خاطر این علت ما میتونیم مثل منادا بگیم وا علیون میتونیم آخرش الف بیاریم بگیم وا علیه و میتونیم در آخرش انگام البته وقف میگیم وا علیه های سخت بیاری. سالات بار و قتیل دار میتونیم بگیم و قتیل داره میتونیم بگیم میتونیم بگیم و قتیل داره میتونیم بگیم و من فتح مصره و من فتح مصره و من فتح مصره دبنی که جمله باشه این علی و ها روی چه کلمه میان توضیح داده این, این سه امثله مال چی بودن المتفجع علیه اما المتوجع منه برشون مصیبت پیشونه بود مثلا الان اگر خدای نکرده بر یکی مصیبتی پیش بیاد به شکل فجیعی بشه ما میتونیم بگیم چی؟ و عزیدا بله. اما بیاید یک واحد این نباید ویش مصیبت بیش نیومدیم. این ظلم کرده. آه دیگرانو آزار و ازیت داده. یک جاجا، یک جاجا. ایرانش مثل منادای. اگر مفرد و معرفه بود میگیم مبری بر ذمه حالا یه حال نقطه دیگه پیش میاد مثلا در وا علیا این علی مفرد دیگه مبری بر هست حضرت ذمه مقدر چون الف اومده ما قبل الف فتحه میگیره پس این فتحه سبب شده که ذمه ظاهر نشه لذا در وا علیا میگیم وا حرف ندا و ندبه علیه چون مفرد هست و معرفه مبری بر چه است مبنی بر زمه است قبلن ایراب مناده رو خوندیم دیگه این ایرابشون من ایرابه فرقی نداره ولی اینجا میخواد منادایی ای که نوت باشه رو برام توضیح بده پس میگیم زمه تقدیری و علیا علیا میگیم مرفوع مبنی بر بر زمه تقدیری به خاطر این که فتحی اومده و آرش شده که نمیتو... نمیگذاره علف زمه بیاد خوب وا حجاجو وا حجاجه همچنین وا هم همچنین میگیم وا از عدات ندبه هست نداء و ندبه علفه وا فقط برای ندبه بکار میره مختصه چه است. ندبه هست ولی در ترکیب میگن ترکیب یا میگن نداء و ندبه یا بعضی میگن ندبه خالی حرف چی؟ نود بخال و مصیر شروب در این مثال چی میگیم؟ اینجا بگیم میگیم چون اینجا مضافه اگر یاد بیاد انبیاد مناعده مضافه چی بود اقرابه؟ منصوب بود اینجا هم میگیم و حرف نود ب مندوب هست همون اقراب مناعده رو داره منصوب با فتح اقراب که خب مضافه ناله هست و ومثير الحروب مثلين بيقولوا مثيرا الحروب ومثيرا الحروب ومثير الحروب ومن يؤذي الحيوان ومن يؤذي الحيوان ومن يؤذي الحيوان بيعيد دار قواعد ديش نقطه برهش ناورده في قسمه بحث بخاطر انك تركيبش مين بود مثل منادى تركيبش كان على بعينه مندوب بله مندو همون اعراب رو داره اگر مفرد مفرد و معرفه باشه مبلی بر زم علامت رف میشه اگر مزاح باشه منصوب میشه بله منادای منادای ولی مندوبه <تصفيق> بله این هم این قائم مقام التجهیوه هست اقائم مقام فیل هست این مسئله قائم مقام فعله میشه هیچ فرقی نداره الان میگه الند وتو ندا ندبه ندایی هست چرا احکامات منادا رو داره موقعی که میگیم وا این حرف ندا و ندبه هست حرف ندا یعنی نداها ولی برعکس به کار رفته برای ندبه ندوتون ندا متفجهعل. ندبه ای هست که بك برای ککی به کار میده برای کسی که برایاش فاجه پیشومده یا متوجه منه یا ازظور از سمت او جه برای انسانات پیش میده مانند حجاج و اح المندوبه که احقام المناده احام منندوب به انه مانند احكام چه مانن هستند؟ موقعی که میگیم و زیدو میگیم و حرف لدا و ندبه زیدو مندوب مبنی بر تو مفرد،, مفرد و معرفه هست مفرد و معرفه هست برای مضاف هم مثالشو دیگه گفتیم و علیکم السلام پس احکامات مندوب به اینهی مثل احکامات چی هستند منادا هستند فهو يبنى على ما يرفع اذا كان علما مفرد مندوب مبنی است بر همان علامتی که مرفومی شد با آن مثلا زید زمانی که مرفوب بشه با چی مرفومی میشه با ذمه زمانی که مندوب واقع میشه پس میگیم مبنی بر چی است بر ذمه زیدون مرفوع بر علامت چی است بر واقع علامت رفعش مال زیدون وابه. زمانی که مندوب و قدشه میگیم مبلی بر علامت رفت که مبنی بر و مبنی بر واب. مثلا اگر بگیم و زیدون و زیدون میگیم و حرف نداعوند بی زیدون مندوب هست مبلی بر بر واض که چون علامت رفتش از موقعی که مرفوم شد با واض مرفوم شد پس الان که هم مبنی است بر علامت رفت مبلی هست ببینید دقت داشته باشید فهو یبنه علامه یرفع به میگه مندوب مبنی هست مندوب بر همون که باش مرخومی شد چی زمان؟ کان علامه مفرد زمانی که علامه مفرد باشه و یونسه با کان مضافن و مندوب منصوب هست زمانی که مضاف واقع بشه مانند و در امثل آورده بود قتیل داری اینجا قتیل جاست مضاف هست منصوب هست با فتحه و لهو عداتانی مندوب دو تا عداد داره هما و و یا و او یا و زیده یا زیده چه زمان ولی یا رو میتونیم برای به کار ببری؟ زمانی که با یا منعاده قاتی نشه زمانی که قرینه باشه که به ما بگه که این یا برای چه کار میره؟ بله؟ برای نودبه به کار رفته. در غیر این صورت جایز نیست که ما یا رو برای چی بکار رو بریم؟ برای نودبه از وا استفاده کنیم از چی استفاده کنیم؟ مثلا زمانی که میگیم یا زیده اینجا دیگه از علف و اینها تشخیص دادم این که این برای چیه؟ برای نودبه هست پس وله له اداتان هما و یا دو ادات داره ندوه و یا هستند و لا تس تستعمل الثانیتو الا اند وضوحی انها لنودوه و دو یعنی یا استعمال نمیشه مگر زمانی که دانسته بشه واضح بشه که برای چه هست برای قرینه باشه که دلالت بر نودوه بودنش بکنه قاعده دویست و و المندوب و يجب ان یکون عالما مندوب واجب است که چی باشه علم باشه مانند و علیون علمه دیگه ها او مضافا الی معرفه یا واضعک مضاف به معرفه ای باشه مانند و قتیل الدار قتیل مندوب هست مضاف به الدار هست که معرفه هست او اسم موصولا مشهورا به ه خالیا من ال یا اینکه مندوب اسم موصول باشه مندوب اسمی باشه اسم موصول باشه مشهور باسلهش چون اگر مندوم نکره باشه نمیتونه میتونه خالی از ال باشه مانم ده مثال سوم و من فتح همیس و من من اینجا چیه موصول بای پس مندوب ما اینجا اسم موسول هست اینا بودن از تمام انسلش اما بیایید قائده دویست و و هشت یجوز لکه فی المندوبی ثلاثت اوجه جایز هست برای تو در مندوب سهاله مندوب سه شکل به کار خودی که آورده بود هر سهاله تو اتفاقا یک انتعامله عاملهو معاملت غیر المندوبی باش همون معامله ای رو داشته باشی که با منادای غیر منجوب داری یا زیدو و زیدو چطوری مناده رو بکار بردی ساده این رو هم مثل همون مناده بکار بردی و زیدو این حالت اولش بود در هر دو امثلی همین کرده بود و علی این حالت اولش او انتزیده علی آخری حلیفه حالت اینه که در آخرش کار کنید. علفی بیاورید وارد. مانند یک واحد جا جا، و علیون و علیا. او حالت سومش. انتزیده بعد هذه این ها اسکتی اندال وقفی. یا اینکه اضافه کنید بعد از علف های سکت رو. علفی هم وقف. مانند یک و پس به حالت سه مثل منادای غیر مندوب با, با اضافه کردن علف و با اضافه کردن علف و های سکت انگامه این حالت هاش بود اعرابش که هم اعراب منادا رو داره فرقی نداره و یا علم است یا مضافه به معرفه ای هست یا اینکه اسمه مصول است این سه حالت داره و بحث دیگه ای مندود نداره به خاطر این بحثی براش ناآورده بود آنچنانی خب برویم این, این نود وزاد خونده میشه